رساله 8 از رساله استاد جدی و هر چی هر چی انسان به هر شخصی مصلح اینی که انسان داریشید بیان کنه اون و که رابطه با مسائل ارضی و اختراع ده وجوده تامله یکی از تو آزینه که تعلوم وقتم واجبه علم پیدا کردن وقتم و این علم وقتم همون علم تجربیه که یکی علم واجب انسان در کام شدیه علم پیدا و سبرات یه یعنی برای چونتر از تکلوشه برای نظریه که یکی از سبرات وجود تقصیب یعنی انسان برای اینکه این مه در احکام فقهی dokumen این و فحص. فحص در هر موردی به تناسب همون مورد فحص در خوابات موضیه باشه برای شخص مشهی که فحص نهاد 10 سال 20 سال فحص, فحص در خوابات موضیه باشه تمامی ها رو می‌گیریم یعنی همون علمی که در این فرع اینجا بزردم احکامت به نظره علم طریقی که این علم تحصیبیه و شرط تنجز احکام اینها اینهای گفتیم در مقابل این قصد طریقی قصد موضوعی قصد موضوعی قصد خصوحی یعنی ازا علمی تشکم میگه شیعه این پشتنه. یعنی لازم نیست ما تحصیل کنیم اگر خود به خود این علم حاصل بشه این حد مترده میشه علم حصولی مقابل اون علم تحصیل و علم حصولی نازلتر از علم تحصیلیه یعنی رفتش خایینتره و برای تحصیله یعنی شحن نزول قطعه موضوعی در روایات برای تسکیل اندهار اینی برای که بعضی در کامل ما راحت بگیم دارم مشروط به علم کرد شرط تهیدیت خود اینه که علم حاصل بشه پس علم شرط تهیدیت خودشمه اگر علمی حاصل بشه اون حق ثابته و اینده ثابت نیست اگر علمی در موضوع قرار بگیره به جهت تشکیه برای ثانویت دادن منحکام منحکام منحکام من از منیه دیگه نیست ثانویت داره در رسوه دومه خیلی اهمیت اینچنانی نداره اینه بگم قدرین موضوعی اینو بشه بزنید برای اینکه شکریت میشنه انسان هر علمی به هر چیزی پیدا کنه اون علم تاریخی. علم به خمریت باشه علم به خدا باشه علم به معاد باشه به موضوعات باشه علم به باشه،, باشه به هر چیز اینسان علم پیدا کنه در پیدا کنه، اون علم ذاتن طریقیه منطقه از موارد علم در موضوع عدل احکام اخص میشه علم به خمریت و حرمته نه اصل خود خمرزات که اون اولی که گفتیم تحصیلی در مقابله علم حکودی. اگر اینینه علم حاصل به علم ثابت ده. علم حاصل از علم ثابت است. بنابراین رتبه علم موضوعی متأخر از رتبه علم علمی هر علم تاریخی بعضی از علم ها موضوع حکم شرعی میشه. شه. بنابراین در صدی ها در 30 درصد علوم طریقیه هر علمی به هر چیزی پیدا بشه طریقیه منتهیا 30 درصد احکام ما مشروط به علم من هيثور مجنون این و فقها قائلن که خیلی درصد کم یعنی دو سه درصدش اینطوریه ولی واقعیت اینه که 30 درصد احکام مشروط به این. اگر اون علم حاصل بشه علاوه که این حکم ثابت نیست بعضی از علمهای تاریخی موضوع حکم شریع هم میشه علم به نجاست علم به شمریت علم به ادالت یا علم طریقی هست خواهی اینها همین علم تاریخی موضوع حکم شریع و حکم بنابراین تقابل منطقی نداره تقابل تعلیمی هست در مقام تعلیم این ها متقابلن به هر علم موضوعی در ذات خود شریعی علم و شملیت موضوع حکم حرمت تقابل منطقی نیست. تقابل تعلیمی مثل جسم تعلیمی در مقابل جسم طبیعی جسم تعلیمی و جسم طبیعی در منطق خونی این هم یک تقابل منطقی نیست. یک تقابل منطقی تعلیمی برای تصحیل در مقام تعلیم اومده این رو متقابل همگران دادن مفادر اشتباه میشه این یا یا اعتباط بوندار نداره صد درصد علوم تریفی هست ولی سی درصدش موضوع خود میشه هم واقع میشه و در اون موازده علم موضوع خود واقع میشه یعنی علم موضوعی قصد موضوعی که خودش دو بسید. من منحسون مجموع احکام علا سلاثت احسان یعنی تمام احکام که در این روایات محصوص هست این احکام علا سلاثت احسان کارتا تعلق میگیره به نفس واقع به ذات خم بدون دخالت علم و جهدنی ذات خم حرامه در لوح محفوظ در نفس الامر در مقام ارتضا و انشایش که ارتباطی هم به علم مجلد به شخص مجلد چیزی مطبق نیست تعلق حکم به نقص واقع به اون امور این یک قسمه که در این قسم میگن علم طریقیه طریقی تاریخی محصوش میگن در اصطلاح مقام تعلیم و در اصطلاح سودی اسم دوم اینه که علم تعلق بگیره به واقع معلوم خود تعلق بگیره به واقع معلوم یعنی موضوع عبارت باشه از شریع مقید مقید از مرکشب از وافع و ای و وافع مقید به ای یعنی هم وافعی جرساره هم علم ماده که اسطلاحاً بهش میگن موضوعی تشکیه تشکیه علقاتی واقعاً ملاکه موضوعی علقاتی که علم هم موضوعیت داره علم باید حاصل بشه از موضوع حکم شرعی در این نسمه دوم واقع معلوم و واقع منکشفه که مرکب از دو چیز هم خود واقع هم علم مکنم هم من باید علم پیدا کنم هم علم من موافق با واقع باشه این دسته دوم بحث موضوعه بود. بدون یعنی لو همینا قضیدای خاصی هست. دو تا مخصوص تعریف هست. ولی مقام ترکیب، مقام تقسیم همیشه ابتدا مقام تفصیل یعنی شما بخواش تصوور کنی احکام سن و موضوع داره. در مقام تسین همیشه اول مقام تصویرش میشه تصویر کرد؟ سپ تصویر میشه ش چهارم نداره. ولی حالا در مقام ثاد چند اسمش زیاده یا وجود داره اون مرت بهشال شما داشت. رااجداری مواردی که هم واقع مهم باشه هم علم مهم باشه و در مواردی که علم تفی واقعی هم در کار باشه، بعد واقعی که در کار کدوم واقع واقعی نفسالام یا واقع ظاهری برای اصطلاحاتون مخلوط میکنه کنه با اون خاطر نمی دید در مقام تقسیم مقام تصویره یعنی به سنه تصور می یکی اینکه بود مترکت بشه بر نفس واقع دوم واقع منکشف واقع معلوم و سوم هم بود بشه بر علم به واقع نه واقع معلوم علم به واقع در مواردی که نفس واقع مهم خوب این مقام تصویر مقام تفصیلشه مقام اصولیشه اما مقام فکریش کدوم اربرد داره و به چه اصطلاحی و در چه موارد ما دنبال اینا بگردیم اینا خیلی اهمیت داره که در مقام تقسیمهر مترتب میشه یا بر ذات واقع یا بر واقعی که معلوم شده باشه برا متدر یا بر نفس علم به واقع این کاری به واقع علم به واقع قسم اول که ذات واقع مهم باشه اصطلاحا بهش میگن فریقی و مواردش در چه مواردی فریقی منزه در شروط واقعی در ارکان در خیوب یعنی هر کجا باشه این تاریخی. در شروط واقعیه نماز، در شروط واقعیه هست در شروط واقعیه سوم اینها این, این یعنی واقعیه باید احراز بشه اگر مکنبی بعد از پنجاه سال معلوم بشه برای چه واقع نکرده معیزی نیست اقتدار قائد شروط واقعیه ارخان و گوی این موارد علم تاریخی محصه چرا میشه میشه ممکنه ولی آیا وارد شده ترخیص هم واقع شده, شده. شده. شده می نه ترخیص اقسامی داره بعضی از موارد ترخیص اقلیه بعضی از موارد ترخیص شرعیه و ترخیص شرعی یا به ملاک ترسیده یا به ملاک امتنانه هر کدومش باشه لطفه یعنی علالقاعده نباید اینطور باشه مثلا قاعده مواردی که انسان شیعه نبوده و شیعه شده پنجه سال نماز حضرت شای کنه. کنه یا آده کنی یا عاده نکنی فاقا گفتن آده نکنی یا امتنانا در وضعیت موارد رفت میشه ولی علال شروط واقعی ارکان و قیود از موارد علم طریقیه به خاطر این که علم در موضوع این احکام دخالت نداره. شرط واقعیه تحارت حدثیه شرط واقعی, حدثی واقعی نمازه علم در موضوع داخلی است یعنی بخوام اکتفاق چهار تا مثال نشه ذهنیتی درست بشه بر اینکه در تمام موارد شروط واقعیه الطریقیه طریقی علم طریقیه به این معنی که علم موضوعیت نداره اون چیزی که تمام الموضوعه نفس واقع واقع رو اگه امتصال نکنید مجدی در ارکان هم, هم همینطور در خیود هم, هم همینطور مواردی از نظر فقیه صورت یه قاعده حالا مواردش به یه تشکیص مهمه که ما از قاعده شید اسم تو دوم واقع معلوم نه مطلق الواقع در مواردی که موضوع حکم شریع واقع معلوم باشه یعنی قصد مطابق با واقع نه هر قصد قصد مطابق با واقع بخواد واقع هم هم واقع ملاکه هم قرد شما ملاکه انسان قرد پیدا کنه به تحارت حدسیه و واقعا هم تحارت حدسیه داشته باشه اگه نداشته باشه مجید نیست در این موارد میگن موضوعی کشفیل موضوعی کشفیل به واقع هم اسم سوم علم به واقع یعنی تنها موضوع علم به واقع همین که شما علم پیدا کنی به ادالت زد میتونی خدا کن. علم پیدا کنی به ادالت عمر میتونی شهادتش قبول کنی تمام موضوع علم به واقع نه علم با واقع یا واقع معلوم یا خود واقع نفس علم به صورت یک صفت نفسانی همین که قرد پیدا کنه کافی وقت این سبراتی برش مترفته میشه اگر در آیات قرآن در بعضی از مواردش انسان علم پیدا کنه به این شخص فقیه و زکات بشه و بعداً این کشفه که این فقیه نبود آیا دوباره باید یا مجزیه خوبی این مسائل اختلاقیه روایات که رو نمیده روایات نهایتش تبیین موارد و مسادر رو میکنه ولی اون موارد شبهه رو باید حلش کنه؟ اصول حلش کنه یعنی از نظر اصولی این فقر موضوع جواز تا ازشاته علم به فقر موضوع یا فقر واقعی یا فقر معلوم کدومشه پس در تمام موضوعات این بحث ها میاد منتها ارتفاد میخواد ما خیال نکنم آیات قرآن دیگه هیچ بحثی نداره و برای بحث کردن و تمام شده همین الان هم مشکوکه مشتبه ما با خودم باید تشکیز بدیم یا مسین هم همینطور یا سایر آیات احرام تمام اینا هم هم بحثه به خاطر ما موضوع حکم شعری رو تشخیص نداده نمیتونم حکم مترتب برش آیا واقع فقیر شخص باید واقعا باشه باشی یا علم پیدا کنیم به فقرش و واقعا فقید باشی یا اینکه نه همین که علم پیدا کنیم تا کدومش نظر شما چیه اگر کسی التفاط به جوانه به این مسئله از رسائل نداشته باشه تا آخرش هم علم پیدا نمیکنه. به کیفیت استنباط احکام ما کدومش ملاک بدیم از یه معیاری میخواد معیار روانی التفات داشته باشن که موضوع حکم شرعی یا تصور و علا اقسام سلاسه یا ذات واقعه یا علم به واقعه یا واقع و علم به واقعه هر دو این قسم سوم موضوعی صفتی بشنیگن که شامل که احل میشه شامل اعتقاد به میشه <تصفيق> طولی باشه نه تحصیل بنابراین فحص لازم نیست اگر شاره بگی سمرات زیادی برش مترد اگر شاره بگی الخمر و حرام من اگه شک کردن این خمر هست یا نیست باید فحص کنم و دیگر بگه ازا علم تا به خمریت شه این فحو بندک حرام فحو و حرام در این موارد فحص لازم نیست علم حاضد شد حرام نیست علم حاضد وقت در موارد شبهای فحص بکنم از شخصی بپرسن شراب یا نه لازم نیست اگر بنایش شد تحارت لباس تهارت ظاهری باشه نجاست علمیه معنیت داشته باشه لازم نیست بپرسن این نرجسته یا پاکه ف درش لازم نیست تحقیق درش لازم نیست همینا هم, هم صوریه به خلاف اون مواردی که واقع مهمه شما باید فحص کنید اگر یک لباسی معلوم باشه حالش خب میشه با نمازون ولی اگر یک لباس مشتبه باشه هم فقه لازمه هم فتوای فقها بر احتیاط دو تا نماز واش بخونه همین لباس هم یه لباسی هست حسانارش درش میشه و ما منتظر نداری تو جلسات اول کسی به عمق این مطالب برسه خوب میشه حداقل همین مواهب یک ماهی می تا ذهن انسان روی محور بیاد یعنی ما چیز داریم میگیم الان تنشیر شود من دارم تکرار میکنم ظاهرش تکرار واقعیش هم تکرار به خاطر باید ذهنیت پیدا برای که ما تشکیف بدیم علم موضوعی کجاها به درس میکنه. خب نجاست لباس مانع نمازه مانیتش علمی یا واقعی کدومشه؟ اگر مانعیتش علمی باشه لازم من بپرسن در موارد شبهه محکوم به تهارت ولی اگر مانعیتش واقعی باشه هم فصل لازمه هم در موارد شبهه نمیشه با این, نماز با این لباس نماز کن و بهش اکتفا کرد حتما باید دو تا نماز بخونی در دوتا لباس باید میشه نصر سبرات چیزی نیست همیشه متأثر بر هم لا بحثی که فرق باشه به این موارد شارع علم رو واسطه قرار می ده. اگر علم واسطهی در سقوط و حکم باشه این خودش ترخیصه خودش تصفیله میشه حتولی نیاز به ف نداره و در موارد شبه محکومه به تهارتی به خلاف مواردی که علم تریخی باشه مثلا در شروط واقعی، اگر انسان شک داشته باشه این لباس تهارت واقعی دار دار یا نداره باید فخص کنه بعد از یعظه از فحش همسالین ها میتونه احتیاط کن بزا در احتیاط گفتن احتیاط بر دو قسمه یک احتیاط احتیاط در فتواست یکی فتوای به احتیاط یعنی فتوا نمیده احتیاط میکنه خوب این احتیاطات مستلمه و زیاده میشه مراجعه کرد به دیگری و آثار دیگه ولی بعضی از مواده برقایی به احتیاط میدن باید احتیاط کنیم به خاطر اینکه از مواد و شرط واقعی بوده نو باید در دو تا لباس نماز بخونیم اکتفای به یک نماز مقای تختتر بشه حنجود درست اینجاویه حنجود خود دو اون اما این تدریفیز برد کنید اگر که مجال که ولی باشید تدریفی که برای تدریفیز برای یک رایی شده تا تو بگه موردویی چونکه توی شده که هر کار و اون تدریفی کار را کلیفت اختره ما به تدریفیز تردونه حالا ما در مقام تدریس بسیم آمان با ولی سهر وگه آنها شوقی که نده تساموه هم نده در مقام ترزید دو جور میشه ترزید ما مقصر رو بخونیم ترجمه کنیم مراجع زماعه رو مشخص کنیم و بگذاریم بدونیم که بری از قروعات از به ذهن تلقه برسید این یک قسمه که آثار برش مطلقه میشه آثار دنیاوی مقصدیات برش مطلقه میشه و در دوم اینه که یه مقدار اصول و قطفیق بدونست یعنی ازدواج فپس تا نتیجه برایش بشه این نیاز به تحلیل واقعی داره. ما تا موارد در طریح موضوعی و حقیقتشون رو نشناسیم و اون چیزی که اعتقاد داریم من چیزی که میگم بهش اعتقاد دارم. من در درس های دارم اینار رو میگم درس خارجی که ررفتم و نوشتم همهشون الان داره خاک میکنه نگاه نمیکنم به اونم که بخوام از اونا بخوام نرفکنم چیزی که بهشه اعتقاد دارم یاد داشت می تا که دستانه حتی موقع خواب نه رو یاد می چیزی نیست که بخوام از جایی بنویسم به شما ها بخوام الگازن این طوره چیزی که خودم اعتقاد دارم و وطشت بین خودم و خدای خودم که واقعا این اونو دارم میگم در قطع طریقی هم سخته. در قطع موضوعی امور آسان اینو اگر در کلمات نایینی بهش تصدیه کرده بودند خیلی از عمرها تلف نمیشد تلف شدن اون به خاطر که ما سردشو نمیدونیم ما لازم نیست که ظاهر مطالب رو فقط بخونیم به اون هم باید برسیم دیگه اینهایی که دارید میخونی قفل موضوعی برای چیه در چه آخر یکی از قواهیدی که مشهور میگن میگن یعنی تشخیص اینها به مناسبات حکم من و موضوع اگر به مناسبت حکم و موضوع باشه یقینا بعضی از موارد که از موارد پسیل از موارد امتنان از موارد ترخیصه یقینا باید ما علم رو دخیر ولو در ظاهر لسان نیمید بین شروط و موانع یا فردی هست یا فردی نیست این رو باید الان بدونه میده اگه بنا باشه بگیم نه الان رسایل بخونیم هما ظاهرشو رسایل کسي واقعا بخونه خوب ولي بگيم حالا ظاهرشو بخونیم تا حالا بعدن بعدا اینهارو میخونیم بعدن در کار نیست اسان بعدن رو کسی ندیده شما ده سال بعدم یه بعدنی برای ده سال بعد سون رو احدی ندیده و براش نمیشه برنامهریزی کرد الان امروز تو این ساعت هم به شما داره تلف میشه و هي باشه پیش برید من بیش ندارم اون به شما و عمر خودم که تعارف ندم عمر خودم خیلی برای خودم مهمه طلب کنم برای اینکه تکرار مکردادات باشه چیزی که بهش اعتقاد دارم از باب وظیفه شرعی دارم باقای میگم که قطع موضوعی به احکام ثانویت میده حالا کسی بیاد بگه آقای ترویج رو قبول نداره قبول نداره ما هم هزار تا مطلب آیات ترویج قبول نداره لازم نیست کسی از منو قبول کنه یا بگن مدرسین محاصر اینا رو رد, رد کنن رو رد میکنه. مهم نیست مهم اینه که چیزی من اعتباط دارم اینه قطع موضوعی به احکام ثانویت میده احکام در درجه دوم واقع میشن مثل علمه های که رتبه اول رتبه دوم رتبه سوم دارن مثل توچاری که رتبه اول دوم سوم دارن عمرها نباید تلف بشه ما به مطلب رو اون چیزی که در نهایت فقه می‌خواد بهش برسید از الان پنجاه وارد به ذهن شما رسیده باشه اگه برام باشه بگیم بعدن حواله حواله به بعد خودش خسارت آقایین اینا رو گوش کنن در دوره حساب در اقوام سابق که با اونها معنوس بودیم اونها بعضیا از این حرفا می‌زدن که اینا بعد یه طور سوسو جو دو سه سال شد و اینا رو گوش نکردن یعنی ما هر چی گفتیم لا یزیدهم لا خطا بعد اینا گمراه شدن و که افتار از آب شدن و سنگ فارید از حوضت هم رفتم <تصفيق> نه انسان به یک نصیحت باید گوش شده من عمرم در خصوص شده خدا میدونه <تصفيق> یعنی تمام فکرم ذهنم در این بوده و یک ساعت حتی جایی تلف نمیکنم. برای اینکه به لب مطلب علاقه دارم بهش برسن حالا ما با این تجربه تجربه و و قاصر و نابست چیزی بگی و تلا بگوش نه یقینا گرفتار میشن گرفتار میشن و آسونترینش تردید مرفت دردوشن مزفزبین نبین از آنکه این این درد از این درس باوندر تازه شیش سال دارن درد عوضی نمیدونه که اونجا برن یا اینجا برن نمیدونه درس خارج برن یا اینجا برن این عم تا کجا مشتبه شده فکرا تا کجا خورده شده موریانه تا کجا رسوخ پیدا کرده که امر داره میشه بین یه در خارج با یه درست درس های. این طوریه یعنی تردید رو باید برداری در ارتداد شار اومده مرتد و گفته محکوم به ادامه باید کرد چرا خاطر شکش شک شرد چیز خوبی نیست من اگه چیزی بگم باطلم بگم جزمی دارم میگم و شیء باطل جزمی مقدم بر شیعه واقعی مشروعه این رو باید آقایی روی تعارف نداریم عمر شماها ها عزیزتر از عمر من و من دوست ندارم و من طلب ها رو بیشتر از بچه های خودم دوست دارم یعنی اون وقتی که من برای طلب ها می زنم برای بچه هایم پس تشکیل نکنیم مسئله ای که ما بر این نوعه از نظر کدومش؟ موضوعی که آره بحث اینه که آیات اصول زیاده و ما نمی‌گیم 23 سال طول بکش آخری است که سالی سال طول بکشه. تا همه آیات نازل بشه. واقعیت یا واقعیت همه چیز رو که نمیتونیم اصلا ما قدرت برگفتن گفتن مگه من امام علی هم در لحظه بخوام اینطوری حرف بزن ما ها مجمع و قصورات و تفسیرات نمیتونیم یعنی ذهن من اونقدر قدرت نداره که بیاد یه چیزی بگه که مخدوم همه باشه اون چیزی که خودم تشویق دادن دارن میگن که خیلی از این بیان نتونم برداشت یا طول بکشه قبول کنید اینها ولی سعی دارم همه چیز رو بگم یعنی اون چیزی که هم تجربه دوره سابقه هم تجربه خودم در درس که میرسه همه رو میگن یه چیزی که عمر ما تلف نشه این ما مهم اینه که آیات اصولی رو بعد از تلاوتش حفظ کنیم وظیفه ما اینه که اینا رو بگیم وظیفه شما اینه که اینا رو حفظ کنیم و پیدیره کنید یکی از آیات اصول اینه که در این مواردی که بحث واقع و واقع معلوم و علم به واقع یکی از گروعاتی که برش مترتب میشه تفریق بین شروط و موانع نماز نمازی شروطی داره که موانعی داره این خیلی مهمه من در کاشتر چیزا چیزارو من میگفتم من خدا میدونه قبلا چهار شهار سال کتاب الاجارهی بهترین شاگرد آقای تبلیزی رو رفتم نشستم در این چهار سال دوتا مطلب به این یدید از سنوید من دوتا مطلب یاد داشت شده یعنی چار سال عمرم تلف شد. که من بعد از زهران از مهدی پاشندی یا میجا یک ساعت درش رو آقا نمطالعه میکرد نه حضور زند داشت و همین که پیش آقای تبلیزیه میرفتیم درسته چهار سال عمرها طلب من تو چار سال میتونستم به خیلی از پرات دست پیدا کنم چرا این چوری هم؟ حالی اینها رو آقاییم کنن یک فرقیه که خیلی مهمه شما از الان میتونید مبنای فقهی شما باشه در موارد که احکام مترد میشه بر موضوعات بین شروط و موانع فرق هست یا نیست خب نسبت به قطع طریقی محس ما گفتیم شروط واقعی مقتصد بانجاست نسبت به این دومی که واقع منکشف باشه واقع منکشف مختزای قائده حکم به قطلان نماز در شرایط علمی در شروط علمیه. یعنی اگر علم باشه شرطیت داره اگه علم نباشه شرطیت نداره مثلا در نماز پنج تاش جزء شروط و اجزاء واقعیه، بقیه شروط علمی و زفیه ذکر سجده جلسه استراحت نمیدونم استقرارش و طمعنی همین جزء شروط زفیه اگه یادت باشه شرطیت داری یادت نباشه شرطیت من سجده رفتم ذکر یادم رفتی اشتار نداری سجده رفتم استقرار یادم رفتی اشتار نداری بین سجده ننشستم اشتار نداری اینا شروط ظفیه یادت باشه لازم رکعتین سوم و چهارم این ذکر داره یادم رفتش حالم تمام اینها جزء یعنی یعنی نه درصد شروط ظفیه علمیه اگه علم بهش باشه هست اگه نباشه خب ما چرا برای قطع موضوعی فقط مثال بزنیم به خمر معلوم خمری که به حوزه ها داره به چیزهایی که مقتلا بهیم 99 درصد از شروط نماز و حج و صح شروط زکریه شروط علمیه یعنی علمش موضوعی یه مثالی بالاتر از این در موارد که واقع منکشف و واقع معلوم موضوع باشه مختزای قاعده بطلان نماز در شرایط علمیه اگر کشتلا بشه بنابرای دومی که واقع من ولی اگر سومی باشه، باشی خلاف هم بشه شال نده. یعنی اگر مبنای شما این باشه که شروط علمی به شروطی میگن که از قسم دومه یعنی واقع معلوم شرط معلوم نه علمه به اگر مبنای شما دومیه در مواد که خلاف شخلاف یاده میخواد. ولی اگر دومی باشه اصلا کشف خلاف معنا نداره به خاطر اینکه علم به ذک نبوده علم به وجودش نبوده اصلا ذکر واجب نبوده برای شما علم به استقرار نبود، استقرار برای شما واجب نبود. هیچ کدام نیازی به وجود نداشید پس اگر سومی سو باشه کشف خلاف اصلا معنا نداره ولی اگر دومی دو باشه معنا داره حالا شروط علمی و شروط ظهری جزء قسم دوم یا قسم سومه سو خب اینه ما باید تحلیل کنیم دیگه اگه طلبی میگی من دارم رسائل می کنم و قصد تحریقی موضوعی دارم تشکیز می زن اینه باید تشکیز بده این قصدش موضوعی قصد موضوعی آیا از قسم کشفیه یعنی واقع معلومه یا از قسم صفتیه یعنی علم به این شروع خدومش شرط علمی در مقابل شرط واقعی شرط واقعی در نمازمون پنشتاست همون پنجتای که در لاطوهاد اومده بقیه میشه شروط علمی و شروط زفری حالا شرط علمی و شرط زفری به چه معناست؟ آیه رو دو معنای دومه یا معنای ثبومه یعنی جوز واقع شرط معلومه یا علم به شرط تحلیل میخواد به خاطر یه مبنای شما الان باید مشخص بشه هزاران مبنا میخواید یکیشین مرحوم آیه خویی قائل به اینجه انسان یک شبه که مجتهد نمیشه 30 سال پول میکشه شما هزاران مبنا میخواید تا هر مسئله ای را از شما پرسیدن تحت مبنا جواب بدید یکی یکی باید تحصیل کنید یک مبنا اینه ما و شرط و زفری شرط و زفری چیه؟ شرط علمی چیه؟ شرط علمی به کدومش میگن؟ علم دقیل داره علم به چه نحر دقیله؟ آیا به نحر دوم دقیله یا به نحر سبوم دقیله؟ وقتی من تشریف ندن این رسایل خوب نفهمیده چی ارتباطیم به هیچ بحثی ما برای رسایل نداره این نسبت به یعنی اگر قسم دوم رو معنای شرط علمی بدونید کشف خلاف معنا داره و مجزی نیست ولی اگر صرف باشه میباشه مطلقا مصر. حالا شما با هم بحثتون بحث کنید که شرط علمی در نظر شما چیه شما؟ بفهمید یه ما اول رفتیم این فرمایشی تماس گرفتن دیدم یک کردن که از رای اینی که خطا موضوعی باشه یا باشه شب تماس گرفتم و تایید کردن که از در اینی که موضوعی باشه نه. این موردی اینه که یا صفتی باشه شما رو صفتی باشه ما گفتیم بشادتون عمل کردیم هر رو من میگم ولی خب با مقتضای قاعده اینه که هر علمی هر علمی هر کجا عرض بشه تعریف یعنی که موضوعی هست موضوعی باشه مقتضای قاعده اینه. من اینا رو جا یا رو فرمودیم ولی خب وقت مخوادینا دیگه یکیشی باید دیگه یک شعری من اول دوره سابق خوندم الانم من برد بخونم برای از مولوی شعر خوبیه کسی اشال نکنه اجالا نکنه که هر دم از این باب بری میگه سد اونه دیگه علوم غزوی تازه تر از تازه تری میگه سد اجاله نکنه میاد تمام این ها میاد مقتضای قائلینی که علم و تاریخی باشه. اگه موضوعیه، موضوعی, موضوعی ترجیح باید باشه، نه سفت. اگر کسی بیاد بده نه از اون دلیل میخواد. و همین اینا رو من اینجا بحث کردم یک میرسه میرسه و ما این آیات رو بر شما برااحت می بحثم چی بود؟ همین آره که بحث چه این بحث می آقا فرضودن که اینطوری بعد بر نظرشون برگشته، حالا نمی برگشته به چه سودی در اومده. ولی علال قاعده تو ذهن آقایین باشه که مقتضای قاعده که کشفی باشه در موازی علم مرخ میشه مقتضای قاعده که موضوعی کشفی باشه موضوعی طریقی باشه و صفتی دلیل میخواه این حالا به جمله بمونه برای بحث که الان وقتش نید چی کلام میخوام بگم که ما برای مباحثات خودتون بحث کنید شرط علمی به چه مهم است شرط دومه یا رسم سومه؟ یه ماشید من باید بیارم که این سره گفتیم این سره هستیم مقاید بلیمیست آره شما زحمتیست بلیمیست تو زهنه قایی بالا بلیمیست یه یه دو سه یه نفس البام اینها رو به همین شکل قایی کنم قوافه، دومی الواقع و المعلوم، سوم الیم و بیوافه. اون اولی که پسش قطع تاریخی محسه. اونو که هیچ نداریم. در دومی شرط ادمی، مانع ادمی نمیان شرط ظفتی این به چه معناست؟ به معنای دومی یا معنای سومه؟ اینو شاید باور نکنید در مبانی مرحوم آية تبریزی منقح نیست. شرط علمی به خودمشونده. ولی باید برای ما ها معلوم باش چون اونها برخوردار بودن از مصاحبت با آية خویی مشکلی براش نبود. یعنی ما وقتی نداریم باید خیلی منقح‌تر بحث کنیم. شرط علمی و ذکری مانع علمی و ذکری به چه معناست؟ به معنای دومه یعنی کشف خلاف در داره یا یعنی به معنای سومه. و هر دو موضوعی دومه موضوعی کشفی ثبوته موضوعی صفتی نرو به همین نهم آقایین حفظ سنن و باعثه کنید و بحثی که اینجا مترتبه و مفیده اینه که مرمون سیدی یزدی عقل و تا زمان نهازا قائل اگه بین شروط و موانش فرقی نیست این چه شرط چه شرط علمی مانه علمی هیچ فرق بین اینا نیست اگه کشف خلاف هست در همه هست اگه نیست در این شدام نیست تفسیل کلامش فرقا میگن از هاشیر بردوسار و از فتوایی که در عربه داره. ولی اون چیزی که الان میخوام بگن بفرد بشید اینه که فرق از بین شرایط و موانع بین شرایط و موانه, و موانه فرق از چندین جد به این معنی که در باب شروط در باب شروط مطلقا یعنی چه شرط واقعی باشه چه ادنی باشه در باب شروط مطلقا چه واقعی باشه چه علمی باشه عدم و لعظه هست کش و هست در باب شروط و شرایط به خلاف موانه ولی در باب موانه اینطور نیست بین موانع مو... واقعی و موانع علمی فرق موانه واقعی کش و داره عدم الاجزاد داره ولی موان علمیه که از نداره و این معرکت الارام میشه در بعضی از مساعدی که اصلا معلوم نیست شرط یا مانه مثلا آیا تهارت لباس مسلی شرطه یا نجاست مانه کدو میشه بس ام داره بین دو تا مبناست اصلا معلوم نیست برای این فقیل که آیا طهارت لباس شرطه یا نه طهارت لباس شرط نیست نجاست مانده کدومشه اینا رو باید ایجاد تشخیص بدی اگه اینا رو ایجاد تشخیص نده در صائب رو نخونده ادامه قرن نشه لباس خنده اونان که حوصله ندارن از سرت خیلی خوب نمی‌شید به لطفاتون هم بدی تاثیرش نمی‌شه یعنی طلبه خودش باید اهل کتابت باشه بعد یه دلم به کتابت ی نگیم که ایل براثیمونو ببنیم. نه وی به یکی باشیم. ما چیزی از او هر کلمه‌ای برای خودش غایب نبیشید. چون مجبوریم باشیم باشیم باشیم باشیم باشیم باشیم باشیم باشیم که باشیم باشیم باشیم سهیر تحفظ واقع رو لحاظ بکنید که بنا نظر به واقع داشته یعنی اون نتیجه اون وقتی که ما بگویم نقطه نگاه خیالا به بست ما اگه اسطلاح حالا بگم نظام شریعت رو بخواییم و حاضر که که شاره به واقع میخواد تحبوز باشه باشه و در صورتی که علم داخل میکنه در موضوع در واقع مقلاق به یه نهدی داره واقع رو میخواد یعنی اگر که واقع چون که آه. تو حالت که تریخی باشه بیانه هم میتونه مقام بشه یه مقام علم ما بشه. خب این ادم اصابهش بیشتره البته پیش دیگین است که مولا اینو برای واقعا آره همین قایده است انا شما چیز شاید رو قانون داش ولی یه قایده ای برای تشریح حالا رو تشریح بدیم که خود ای... دیگه اگه مولا خودش تغییر نکرده باشه که من امو به لهجه عشقی ازت میخوام باعث برا تشریح کردن شاری نگفته ولی چون قایده بود ای باشه شاری برای چی از نظر اتکازی که معلوم می‌کنه این صفتیه تشدید. شما رو در از این نمی‌شه طول بده. یعنی ساعت دیگه بخاطر شندیده چیز متجانس نمی‌شه. چرا؟